بازگشت لورولو. بهار برده و قلعه ارل از میان هر پستی و بلندیش می گذشت. تقدسی ملایم که هوا را متبرک و تمامی موجودات زنده را جستجو می کرد. بیان که حتی ریزترین گیاهان را که در نهفته ترین مکانها و یا در میان دیوارهای ساخته شده از ردیفهای کوهن سنگی رویده بودند، نادیده بگیرد، و در این فصل اوریون هیچ اسب شاخداری شکار نکرد، نه به خاطر اینکه زمان زایش اسبهای های شاخدار را در سرزمین پریان نمیدانست که در آنجا گذر زمان همچون اینجا نیست، بلکه به خاطر احساسی به جای مانده از نیاکان زمینیش بر علیه شکار هر موجودی در فصل ترانه ها و گل ها، بنابراین ازگهایش نگهداری میکرد و اغلب، در انتظار بازگشت لورولو به تپه ها مینگریست و بهار گذشت گلهای های تابستانی روییدند و همچنان هیچ نشانی از بازگشت جن نبود چرا که گذر زمان در دره های سرزمین پریان همچون هیچ یک از دشت های انسان ها نیست و اوریان در غروب های گذران چندان مینگریست که راسته تپه ها به سیاهی میگراییدند اما هرگز سرهای گرد کوچک جنها را ندید که جهش کنن از تپه ها پایین بیایند. و بادهای بلند پاییزی آه کشان از سرزمین های سرد رسیدند و اوریون را هم همچنان نگران لورولو یافتند و مه و برگ های در حال دگرگون شدن با قلبش از شکار سخن گفتند و سگها بیتاب فضای آزاد و رد بویی بودند که همچون راهی رازگونه از میان جهان پهناور میگذشت، اما اوریون نمی‌خواست هیچ چیز جز اسم شاخدار شکار کند و در انتظار جنهایش ماند و شاید در یکی از این روزهای زمینی در غروب سرخی که هوا بوی سرما میداد و در جنگل صحبت لورولو با جنها در جنگل پایان گرفته جهشهای تون تر از جهشهای خرگوششان آنها را به مرز رسانده بود آنانی که در دشتهای ما به سوی مرز رازالود پایان زمین مینگریستند، که گاهی آدمها چنین چونین می کنند. قیافه های غریب جنهای چابک را دیده بودند که پیش می آمدند و در غروب خاکستری سری می نمودند. شاید جنها را در حالی دیده باشند که یکی پس از دیگری از فراز جهش های بلندشان به درون صد شفق فرو میریختند و بدین ترتیب به گونه‌ای غیر تشریفاتی در دشتهای ما فرو می نشستند و جسخی کنان و پشتک زنان با طوفانی از خنده های گساخانه پیش میآدند. گویی مناسبترین راه برای رسیدن به زمین همین بود، سیارهای که بر هیچ اساسی نمیشد گفت سیاره پستیست است. همچون بادی که از میان کاه میگذرد، سر و داکنان از کنار خانه‌های کوچک میگذشتند و هیچ کدام از آنانی که صدای شتاب سبک آنها را می‌شنیدند نمیدانستند تا چه اندازه بیگانه اند جز سگها که کارشان مراقبت است و به خاطر عقب ماندگیشان از انسان از هر آنچه میگذرد آگاهند سگها به هنگام گذشتن کولی‌ها، ولگردها و رخ دادن هر حادثه‌ای در بیرون خانه پارس می کنند، به موجودات وحشی جنگل با انزجار بیشتری پارس می کنند، چون خوب میدانند که این موجودات با چه خفت اصیانگرانهی به انسان می نگرند، به روباه ها به خاطر اثری از رمز و راز و سرگردانی های دور دستش خشمگینانه تر پارس می کنند، اما آن شب پارس سگها ها ما ورای انزجار و خشم بود، بسیاری از که شاورزان در آن شب فکر کردند که سگهایشان دارند خفه میشوند. و هنگامی که جنها از این دشتها گذشتند و برای خندیدن به گریز وحشت زده و ابلهانه گوسفندان نیستادند چون خندهشان را برای انسانها نگاه داشته بودند خیلی زود به تپه های بالای ارل رسیدند و در زیر پایشان شب و بخار برخواسته از تجمعگاه انسانها در همامیخته به رنگ خاکستری دیده میشد و آنکه بدانند این بخار از کتری آب جوش زنی برمیخیزد یا کسی لباس کودکش را خشک می کند، یا چند پیرمرد به هنگام غروب دستهایشان را گرم می کند، خودشان را آماده کردند تا به انسانها رسیدند بزنند زیر خنده. شاید حتی آنها که خنده برایشان مهمتر از جدیترین اندیشه بود، کمی از بیگانگیشان و نزدیکیشان به انسان خفته در دهکده‌اش در میان دود و بخار ترسیدند اگرچه ترس در این اندیشه های سبک بیشتر از سنجابی بر روی آخرین و نازکترین شاخه شاخه‌های درختان بر جای نمی‌ماند دمی چشمهایشان را از دره بر گرفتند و آسمان غربی همچنان بر فراز آخرین پرتوهای غروب می‌درخشید نوار باریک روشنایی محو شونده چنان زیبا بود که پنداشتند سرزمین پریان دیگری در آن سوی دره است گمان کردند دو سرزمین پریان مبهم عسیری در دو سوی این دره هستند که چندتا از دشتهای انسانها در نزدیکیشان قرار دارد و سپس آنچه هنگام نشستن بر روی تپه و خیره شدن به غرب دیدند یک ستاره بود ناهید بود که در غرب به آبی ساییده میشد و همگی چندین بار در برابر این بیگانه زیبای آبی روشن سرخم کردند چون اگرچه ادب در آنها نادر بود اما ستاره شامگاهی را چیزی زمینی و وابسته به انسانها نمیدانستند و باور داشتند از سرزمین پریانی آمده که نمی و در غرب دنیا قرار داشت و ستارگان بیشتر و بیشتری پدیدار شدند تا جایی که جنها ترسیدند چون از این سرگردانان تابان که میتوانستند از تاریکی بیرون بزنند و بدرخشند هیچ نمیدانستند نخست گفتند تعداد جنها بیشتر از ستارگان است و آرام شدند چون به تعداد خیلی اعتماد داشتند سپس کمی بعد شمار ستارگان بیشتر از جنها شد و جنها هنگامی که در تاریکی و در زیر آن تعدد نشسته بودند احساس ناراحتی کردند. اما کمی بعد این خیال آزارنده را فراموش کردند چون هیچ اندیشهی چندان در ذهنشان پایدار نمی ماند. به جای آن اندیشه های شادشان را متوجه نورهای زردی کردند که از درون خاکستری اینجا و آنجا می جایی که چند خانه گرم انسان در نزدیکی جنها آسوده بود. جیرجیرکی گذشت. از وراجی دست کشیدند تا بشنوند چه میگوید اما او جیر, جیر کنان به خانه میرفت و آنها زبانش را نمیدانستند. سگی در دور دستها ها مدام پارس میکرد و شب ساکن را از هوشداری میآکند. و جنها از تنین صدایش خشمگین شده بودند چون حس میکردند این صدا بین آنها و انسانها حایل شده است. سپس جسم سفیدی از درون شب بیرون زد و بر شاخه درختی فرود آمد و سپس به راست خم شد و جنها را نگاه کرد بعد دوباره به چپ خم شد چون از وجود آنها مطمئن نشده بود لورولو گفت یک جغد و بسیاری از جنها این جانبر را پیش از آن دیده بودند چون بسیار پیش می آید که جغد بر هاشیه سرزمین پریان پرواز کند کمی بعد رفت و صدای شکار کردنش را از تپه ها و سوراخ ها شنیدند. و سپس هیچ صدایی جز صدای انسان ها یا فریاد زیر کودکان و ناله سگ باقی نماند که حضور جنها را به انسان هشدار میداد. درباره جغد گفتند موجود قابل توجهی است چون از تنین صدایش خوششان میآمد اما صدای انسان ها و سگ هایشان خسته کننده و آشفته مینمود. گاهی نور فانوس های رهنبردان دیر رسیده را میدیدند که از تپه ها به سوی میرفتند یا صدای انسانهایی را میشنیدند که در شب خلوت برای دلداری دادن به خود به جای استفاده از نور فانوس آواز می‌خواندند و در تمام این مدت ستاره شامگاهی بزرگتر و درختان شگرف سیاه و سیاه تر میشدند. سپس در جرفای شب صدای ناگهانی زنگ برنجین نجات دهنده از میان بخار و مه روی جویبار برخاست و در درون دره پیچید پجواک این صدا در شب و سراشیبهای ارل و تپه تاریک تنین انداخت و این پجواک ها به جنها رسید و گویی با آنها و تمامی چیزهای نفرین شده و ارواح سرگردان و کسانی که توسط نجات دهند رستگار نشده بودند به جنگ برخاست و آهنگ محکم این پجواک ها که با هر تکان زنگ مقدس در شب میپیچید بیشتر از هر شگفتی زمین گروه جنها را سرگرم کرد چون هر چیزی که جدی جدیست هموار جنها را به لودگی میکشاند. اینک شادمانتر شده بودند و پوزخند می زدند و هنگامی که همچنان سپاه ستارگان را مینگریستند و حیران بودند که دوست هستند یا دشمن آسمان به کبودی گرایید و ستارگان شرقی چشمک زدند و مه و بخار انسانها به سفیدی گرایید و پرتوی لبه دورتر دره را لمس کرد و ماه از پشت جنها از پشت تپه ها بالا آمد سپس از جانب مکان مقدس نجات دهنده سرودی دست جمعی شنیده شد. هنگام سرود طلوع ماه بود. چون مردم عادت داشتند در شبهای بدر، هنگامی که ماه هنوز پایین بود، سرود بخوانند و این رسم را طلوع ماه می‌نامیدند. نوای زنگ بازی ساده بود، صدای صحبت‌های گذرا دیگر شنیده نمی‌شد. در دره سگهاشان را ساکت کرده، هشدارشان را فرو نشانده بودند و آن تک سرود جدی و موقر مردم از جلوی شمع‌های درون جایگاه مقدس چهارگوش کوچکشان بالا می‌رفت که نسل‌ها پیش از سنگ خاکستری ساخته شده بود سرود که همچون شب سنگین و همچون بدر ماه رمزالود بود همزمان با طلوع ماه اوج گرفت و با معنایی ماورای بلندترین اندیشه‌های جنها آنان را ترسانید سپس با هماهنگی از روی سبزه های یخزده تپه جهیدند و همگی به درون در فرو ریختند تا به شیوه های انسان ها بخندند، بوت های مقدسشان را ریش خند کنند و با لودگی سرود آنها را برهم بزنند. با یارش جنها خرگوش ها از جا پریدند و گریختند و ترس آنها لرزه خنده ای در جنها انداخت. در غرب شهابی شتابان در پی خورشید درخشید که یا میخواست ورود اهالی آن سوی مردهای زمین را خبر دهد یا صرفاً در انجام یک قانون طبیعی سقوط کرد در دیده جنها چونین مینمود که یکی از آن ستارگان مغرور افتاده است و با لودگی جنی شادی کردند بدین ترتیب در میان شب خند خندان آمدند و از خیابان‌های روستا پایین دویدند بدون اینکه دیده شوند همچون هر موجود وحشی که در دیرگاه تاریکی سرگردان است و لورولو آنها را به کبوترخانه راهنمایی کرد و همگی پرشکنان به درون آن ریختند شایعه ای در ده پیچید که روباهی به درون کبوترخانه پریده اما تا کبوترها به خانهشان بازگشتند این شایعه از میان رفت و مردم ارل تا هنگام بامداد هیچ نشانه ای بر اینکه چیزی از آن سوی مرزهای زمین به روستایشان وارد شده نداشتند. جنها در تودهی ای پهن‌تر از توده خوک‌های جوان در کنار یک آبشخور، کف خانه کبوترها را اشغال کردند و همچون همه چیزهای زمینی، زمان بر آنها می‌گذشت. هرچند هوششان اندک بود، اما خوب می‌دانستند که با گذر از مرز شفق شامل گذر زمان میشوند چون هیچ موجودی بر حاشیه خطری زندگی نمی کند که از تهدید آن بی باشد همچون خرگوش های کوچکی که در بلندی های سخری خطر صخره پرتگاهی را می دانند آنانی هم که نزدیک مرز زمین می زیستند خطر زمان را خوب می دانستند و لورولو به آنها آموخت چگونه زمان را برای مدتی باز ایستانند که در غیر این صورت هر آنها را پیرتر و پیرتر می کرد و تمام شب در گرداب بیقراری زمین می شرخاند سپت چونبات می زد و چشمایش را بست و بی حرکت لمید به آنها گفت این خواب است و در حالی که به آنها هشدار می داد به نفس کشیدنشان ادامه بدهند و تنها در جنبه های دیگر بی حرکت شبند با اشتیاق خوابید و پس از چند تلاش نافرجام جنهای قهوهی دیگر هم همین کار را کردند تلوع که فرارسید و تمامی موجودات زمینی را بیدار کرد پرتوهای بلند از میان سی پنجره کوچک به درون تابید و پرندگان و جنها را بیدار کرد و همه جنها به سمت پنجره رفتند تا به زمین نگاه کنند و کبوترها به روی تیرکهای سقف پریدند و چپ چپ به جنها نگاه کردند انبوه جنها که روی شانههای هم سوار شده و پنجره ها را مسدود کرده بودند، بیقراری و دگرگونی مداوم زمین را بررسی می کردند. و این تنوع و بیقراری را با شگفترین افسانههایی هایی که مسافران از دشتهای ما به سرزمین پریان برده بودند، همخان یافتند و حوض کردند آنجا بمانند و هرچند لورولو اغلب آنها یادآوری میکرد. از پای شاخدار سفید مغروری را که قرار بود به همراه سکها شکار کنند فراموش کرده بودند اما پس از چندی لورولو آنها را از کبوترخانه به پایین راهنمایی کرد و به لانه سکها برد و از پرچینهای بلند بالا رفتند و از بالا به سکها خیره شدند هنگامی که سکها آن سرهای عجیب را دیدند که از بالای پرچینها به آنها خیره شده بودند خورش شگرفی سر دادند و کمی بعد مردم آمدند ببینند چه چیزی سگها را آزرده است و که انبوه جنها را بر بالای پرچینها دیدند به یکدیگر گفتند و از همدیگر شنیدند که اینک جادو در ایرل وجود دارد سفر به دنیای پر رمز و راز ها